بهتر من راجع به مطلبی صحبت بکنم که خودم اسمشو در واقع جور الگا گذاشتم شاید بگیم الغای فرهنگی الغای عرفانی به این صورت که خب میدونید ما سابقه چند ساله در بحث عرفان داریم و امروزه در دنیا متوجه اهمیت عرفان شدن و در واقع از اندام در زمین ارفان خودش شده جزید یکی از فعالیت های درحاشی فرهنگ هر ملتی در تمام دنیا و در واقع پی بردن که در کنار تبلیغات فرهنگی و علمی و غیره لازمه که هر ملتی برای خودش یک هویت ارفانی هم داشته باشه و نشون بده که در وادی ادراک و شهود و اشراق چه سابقه ای داره لذا تمام ممالک شاید اکثر ممالک دیگه از غرب گرفته تا خاور دور و شرق هر یک به فراخور حال خودشون ادامندی رو مطرح کردند و ارفان رو ارائه دادن که عمدتاً مبتنی بر فن و تکنیک هستند و در بخش قابل توجهی هم عرفان قدرت خصوصا عرفان هند که صرفا تکنیک تکنیک روی تمرکز روی چاکراها و به اصطلاح کمال رو تکنیکی نگاه میکنه که از روی تمرکز روی چاکراها و کمال میشه رسید در حالی که ما اعتقاد داریم فقط انسان از روی اشتیاقش میتونه به ادراک و شهود و اشراق برسه و روشن بشه و به درک آگاهی ها برسته ایران در واقع الان جولانگاه عرفان های مختلفی شده از عرفان هند چین تبد، فیلیپین ژاپن عرفان سرخپوستی و حتی غرب یعنی آمریکا داره الان برای ما ایران صادر میکنه به این مملکت های بسیار زیادی رو برای ما ترجمه کردن الان در بازار ما موجوده که در واقع حرفهای خود ما رو حرفهای های مختلف رو ازجمله حتی ایران خود ما رو به زبان جدیدی برای ما دارن چیکار چکار میکنن مطرح میکنن. و در بازاری که ما با اون روبرو هستیم همه عرفان رو هم سر تا سر دنیا رو میشه پیدا کرد الا عرفان خودمون رو یعنی انگار که ما هیچ چیزی تا امروز نداشتیم خب البته اینجا صحبت بکنیم که عرفان ما در یک حد تخصصی خیلی خاصی در سطح یک اتی باقی مونده و هیچ کاری برای ارزیه اون به زبان روز صورت نگرفته خصوصا در زمینه عرفان عملی الان در بازار کتاب ایران یک جوان ایرانی یک کتاب قابل فهم در مورد عرفان ایران نمیتونه پیدا کنه در حالی که صدها کتاب در زمینه عرفان های مختلف دنیا میتونه به سادگی در اختیار داشته باشیم اینو میتونیم تحقیل بکنیم خب ما در معرض یک الغاه عرفانی قرار داریم و در واقع با زبان بی زبانی به ما دارن حالی میکنن که ما چیزی از عرفان در دست نداریم خب طبیعتا این انتظار میری که اگه داریم خب رو کنیم و این کافی نیست که ما بگیم کیو داریم کیو داریم چه بزرگانی رو در زمین عرفان داشتیم این کافی نیست و بایستی امروز چیزی برای عرضه ما داشته باشیم نشون بدهیم بگیم ببینید ما هم حووییتی داریم و اون چیزی که از عرفای ما به جا مونده به صورت اشعار که باید کشف و رمز بشه همشون در گوشیه خونه ها و منازل ها خاک می‌خوره و گاه هم افراد این اشعار رو مطالعه می‌کنن و یه بهبه و چرچه‌ای میگند و و بعد همین و الان بر حال دوره و برهه است که اگر در این زمینه فعالیت صورت نگیره نسل جدید ما به طور کلی معطوف عرفان های ممالک مختلف میشه و ما مثل سایر بخش هامون در زمین هنر در زمین های برحال فرهنگی در زمین های مختلف که خله رو ممکنه داشته باشیم و نتونستیم به موقع این خله ها رو پر کنیم و نسل جدیدمون جذب فرهنگ ها و در واقع هنرها و مسائل سایر ملل و ممالک مختلف شده باشند در زمین عرفانی هم این اه، که صورت بگیره و متاسفان این زایه پیش بیاد که البته تا حدود زیادی پیش اومده بنابراین اهمیت عرضه عرفان به زبان نوین با کاربردهای عملی و عینی بسیار بسیار لازم هست و بایستی هر کاری در این زمینه میشه انجام داد صورت بگیری